حکایت، یکی را دوستی بود که عمل دیوان کردی، مدتی اتفاق ملاقات نیفتاد، کسی گفت فلان را دی شد که ندیدی، گفت من او را نخواهم که ببینم، از را یکی از کسان او حاضر بود، گفت چه خطا کرده است که ملولی از دیدن او، گفت هیچ ملالی نیست، اما دوستان دیوانی را وقتی تواندید که معزول باشند و مرا راحت خیش در رنج او نباید، در بزرگی و دار و گیر عمل زاشنایان فراغتی دارند، روز درمندگی و معزولی درد دل پیش دوستان آرند.